ای اهل ایمان آیا دلالت کنم شما را به تجارتی که بیرهاند شما را از عذابی دردناک پس ایمان آرد به خدا و رسول او و جهاد کنید در راه خدا به های خود و به جانهای خود این بهتر است برای شما اگر می دانید اگر این چنین کنید بیا مرزد خداوند برای شما گناهان شما را و در آرد شما را به بستانها می و در زیر جوی جویها و به محلهای پاکزه در بهشتهای همیشه ماندن این است پیروزی بزرگ و بیدی هد نعمت دیگر که دوست می دارید آن را اون نعمت نصرت از جانب خدا و فتح قریب الحصول است و مجده بیده مسلمانان را ای اهلی ایمان بسویی ای جنگ و جیها چیتاب کن راهی نجاتی دین وطن هم امت را انتخاب کن ای اهلی ایمان بسویی ای جنگ و جیها کن Rahina Joti Dinuatan wotan Hem ommet rau inntichab kund ahni, iman, bardamani mani Kur'an, sonna, chan, bieżan Ba qualn i fiela, mili Haceli, khair, sawa, kund Imroze, کشانه مرادی مراد شریران خرا کن راهی نفاق راهی تباهی ملت است از این مرزی بدبوی پره زدوری کن مردوی کفر ملکی تو را کرده آشیان بشکان هي خیبرو خیبر باب کن دیدی که کاروانی کفن پارگان گذشت بر خصبایی خشت و هم در کا کن ای اهلی ایمان بسوی ای جنگو جهادی تا کن Rahina i njati, din, wotan E kun ahni iman berda mani Kur'an u sunat chanbizan Ba qawlu fela mili Hacili khair u sawa kun Bispar ajda و ایران بینای قشر ستم ارتکا کن. از خون دشمنان خدا و وطن و همه دشت و دیاری میهنی خود را خیزا با همت بلند و با ایمان استوان خود بی و هم دیگران راه یاب کن از طالعی سپه امیدوار باش و از مجهدی خود طلبی آفتاب کن ای اهلی ایمان بسویی جنگ جیها چیتاب کن راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن اه احنی ایمان بردامنی قرآن و سنت چنگ بیزن با قول و فعل خیر و ثواب کن که در دست و با نور مهتا قیامتی شهاب کن این جاکی جای جلوی مردار خار نیست و زیبو می کر تصفیه مهد عقاب نیست اگر خواهی نجاتی همین قوم سگوار در دور و بود خود انقلاب کن حجوم ببر بقافلی دشمنی زبون در قلب تو کی نزیعد و ازدراب کن ای اهلی ایمان بسویی ای جنگ و تاب کن Rahina njati, din, wotan Hem ummat ra rau inntikab kun Ej iman berda mani Kur'an u sonna, chanj bie zan Ba kalu, fela, khairu, kun Bersan gari, muhajimi, khun, بستیز خش و مکتب خود کامیاب کن دانی که چستی وزا خلافی کستی باره برونی تو صورت خود از حجاب کن دانی که تو انگلیس را چیکن برحامیانی سرخ و اصل حساب کن بشدار حامیانی نفاق اندر کمین فکری زمان سازی اهلی نقاب کن ای اهلی ایمان بسویی ای جنگ و جیها Rahina najati, din, wotan Hem umet rau inntikab kun Ey ahni iman berda mani Kur'an usunna chanbizan Ba qawlu fela mili Hacili khayru sawa kun hey, no, Hina u mastu a, شکر و سپاس خالق عهد شباب کن ای جوان شر دل مست و آهنین شکر و سپاس خالق عهد شباب کن شستی سبب عادت کی گواهی آ بر ما و سلسل خود پیچو تا کن شستی سبا بعد که گواهی اگاه بر ما و خود پیچو تا کن ای احلی ایمان بسوی ای جنگ و چی تا کن راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن ای اهلی ایمان بر بردامانی قرآن و سنت چنگ بیزن با قول و فیر خیر و سواب کن ای اهلی ایمان بسوی Jęg i jahach i taf kun Raha i ra